سلام می کنم خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی با کتاب افسانه های اوکراین در خدمتتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم می کنم از بخش چهارم حکایات و لطایف و اسم داستان هست کیسته به نام خدا تو یکی از روستا های زن و مرد فقیری با هم زندگی میکردن اونها دو تا گاوه نداشتند و چند تا مرغ و همسایه اونها هم یک گاری کهنه داشت. اونها با هم قرار گذاشته بودن که یک یک شنبه این مرد و زن گاری همسایه را قرض می‌کردند و به گاف های خودشون بستند و به شهر می‌رفتند تا تخم های خودشون رو بفروشند و چیزی برای خوراکشون بخرند و یک شنبه بعد هم همسایه اونها میومد و گاف های این زن و مرد رو قرض می‌گرفت و به گاری خودش بست و به شهر میرفت چند سال این رویه ادامه داشت و اونها به کمک یکدیگر به سختی فراوان گلیم خودشون رو از آب بیرون میکشیدند زندگی و زندگیشون رو می میدادن یک روز زن فکر کرد و فکر کرد و به شوهرش گفت من عقل هم خوب چیزیه ما هر روز باید چند وعده به گاوهمون غذا بدیم در حالی که همسایه ما مجبور نیست به گاریش غذا بده هزینه ما بسیار بالاتر از اونه ولی به یک اندازه از گاف و گاری هم استفاده میکنیم. مرد گفت خب منظور چیه؟ میگی چیکار کنیم؟ زن گفت بهتر به شهر بری و گافه ها رو بفروش و در ازای اون یک اسب و گاری خوب بخرید تا مستقل بشیم و نیازی به گاری همسایه نعشه باشیم. اینطور میتونیم خودمون هر هفته به شهر یا بازار بریم و روی پای خودمون وایسیم حق با توه. تو خیلی عاقلی خانوم. اگه تو را نرشن باید چی کار میکردم؟ زن گفت خیلی خوب. لازم نیست انقدر هندونه زیر بغل من بذاری. بلند شو و ها رو ببر و مواظب باش کلاه سرت نزارن. و اونها رو با قیمت کم و چنگ در نیارن. مرد گافه رو از طویله بیرون کرد و به سمت شهر برد. رفت و رفت تا بیرون ده در جاده مردی سوار بر دید. سلام احوال پرسی کردند و وقتی اون مرد فهمید که مرد قصه ما میخواد گافاشو بفروشه بهش پیشنهاد کرد که گاف ها رو به اون بده و او در قبال اون اسبش رو بهشون بده مرد فوری قبول کرد و گاف رو با از معامله کرد رفت و رفت تا به مردی رسید که خوکی داشت سلام و گفتگو کردند و اون مرد پیشنهاد کرد که مرد قصه ما اسبش رو بده و خوک رو ازش بگیره مرد قبول کرد رفت و رفت تا به مردی رسید که گوسفندی داشت خوکش رو داد و گوسفند اون رو گرف رفت تا به مردی رسید که قاز بزرگ و زیبایی داشت گوسفند رو داد و قاز رو گرفت. دوباره رفت و رفت تا به جایی رسید و قازش رو با یک خروس عوض کرد رفت و رفت تا به مردی رسید که یک کیسه خالی داشته بنا پیش به پیشنهاد اون خروسش و داد و کیسهش رو گرفت رفت تا به رودخونهای بسیار عمیق و دور و دراز رسید و مردان اونجا دید که میخواستن با قایق از رودخونه بگذرند مرد جز کیسها خالی چیزی نداشت هم خالی خالی بود از اونها خواهش کرد که کیسه اون رو بگیرند و در ازای اون اونو به سمت رودخونه ببرند دل مردها به حالشون سوخت کیسهش رو گرفتند و اونو به اون طرف رودخونه بردن وقتی به اونجا رسیدن از اون پرسیدن که از کجا اومده و جریان سفرش به اونجا چیه مرد برای اونها ماجرای معاملات خودش رو توضیح داد که دو گاوه نداشته و اونها رو پشت سر هم معامله کرد تا اینکه سرانجام به اون کیسته خالی و بیارزش رسیده مردها به سادگی مرد خندیدند و اون رو مسخره کردن یکی از اونها از اون پرسید خب وقتی به خونه برگردی و برای زن تعریف کنی که چه کردی؟ اون چه کار میکنه؟ مرد گفت کار خاصی نمیکنه اتمالا میگه خوب شد خودت زنده برگشتی مرد ها باز خندیدند و گفتن امکان نداره اون به گفتن همین جمله بسنده کنه. شرط میبندیم که اون تو رو خونه بیرون میندازه. یکی از ما به همراه تو به خونت می اگه زن تو چنین چیزی گفت تو شرط رو برده و ما پول خوبی به تو میدیم. مرد قبول کرد. یکی از مرد ها همراه مرد قصه ما به خونه اون رفت. در زدن. زنده رو باز کرد و از دیدن شوهر خودش و همراهاش خوشحال شدن. و از کاروبار مرد سوال کرد. مرد همراه پرسید خانوم می شوهرتون امروز چیکار کرده؟ زن گفت نه. اون گاوهاش رو با یک اسب معامله کرد. خیلی خوبه. اسب داریم. گاریم بعدم میخریم. اما اون اسب دوباره با یه گاو معامله کرد. این هم خوبه. گاو شیر میدون برای ما برکت میاره. اما گاو رو با یه گوسفند معامله کرد. گوسفندم خوبه. هم شیر داره هم پشم داره. خیلی خوبه. اما اون گوسفند رو با خوک معامله کرد. به به. خوک هم خوبه. میزاید و خوکای فروونی داریم و به زودی ثروتمند میشیم. اما خوک رو دادو خروسی گرفت. به به. چی بهتر از ما رو زود بیدار میکنه. وای خانم اون خروس خودشو خودش با یه کیسه خالی عوض کرد. کیسه هم خوبه پول رو تو اون اما خانم متاسفانه باید بگم که اون کیسهش رو به ما داده تا اون رو سالم به اون سمت رودخونه ببریم. زن بدون تردید و درنگا خوب خدا رو که خودش زنده برگشته. مرد از این همه سادگی و مهربانی زنش تعجب کرد. پولی به مرد دو زن و مرد سالهای سال، با فقر اما با محبت و همدلی با هم زندگی کردند اونها تو بقیه عمرشون هم از این نوع معامله ها زیاد کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصر های و مهمانی های بزرگ شاهانه قصه هایی از سفر های دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان با اصف های تنرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای دیو و غول و پری رشادت های, های قصهها، همه و همه و همه, همه, و همه در کاناده تریگرامی هزار افسان، داستان های ای صوتی ادساین مهران دوستی